دولت ها مسئولین با احساس مسئولیت در عرصه های گوناگون مشغول کاران امروز به همدلله دولت ما تازه نفس آماده به کار با احساس اعتزاز به اسلام و مسلمان بودن احساس میکنن به خاطر ایمان به خدا دارای عزت هند که همین هم هست مشغول کار تلاش میکنند چالش وجود دارد مشکلات وجود دارد بر سر راه زندگی این مشکلات هست زندگی اگر بخواهد عزتمندانه باشد انسان های دارای خرد و تدبیر مشکلات رو به خاطر رسیدن به عزت و شرف انسانی و کرامت انسانی و تقرب الی الله تحمل میکنن هایی که بیخردند همین مشکلات در زندگی آنها هست آنها رو تحمل میکنن با زلت با زلت و اتخذوا من دون الله اولیاء به جای اینکه ولایت الهی را قبول کنند ولایت شیاطین را قبول میکنند و تقدم من دون الله آلهه لیکون لهم عزا کلا سیکفرون بعبادتهم و یکونون علیهم ضدا فرمولی که انسانهای بیخرد در دنیا انتخاب میکنند دستگاههای بیخرد انسانهای غافل اتخاذ میکنند این جور در قرآن کریم این فرمول رسوا شده است به جای اینکه به خدا پناه ببرند به جای اینکه ولایت الهی را قبول بکنند به جای اینکه به هدایت الهی چنگ بزنند به ولایت شیاطین ولایت دشمنان اسلام و دشمنان بشریت متمسک میشن برای اینکه برای خودشون عزت درست کنن و این عزت به دست اونها نمیاد اون عبادت شوندگان نابکار هم از آنها سپاسگزاری نخواهند کرد کلا س یک فرون به عبادت هم و یکونون علیهم ضده بیان قرآن، بیان روشنی است، باید از این بیان درس گرفت، باید راه رو درست شناخت خط هدایت قرآنی انسان ها رو به سعادت میرسانه، بایستی از خدای متعال کمک خواست